اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلاة و السلام و على نبینا و آله تاهرین فدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز و خیر عرض میکنیم الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله که به نلایت الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید اما بحث آخر علم معانی که عبارت است از ایجاز و اتناب و مصابت که ببینید نوشته ال ایجاز ول اتناب و مصابت ال افلام داره یعنی ما ایجاز اللغوی و, و نمیدونم از این چیزا بحث نمی‌کنیم علی ایجاز یعنی اون ایجازی که در علم معانی است و بلاغی ها ازش بحث می‌کنیم ولی هم یعنی اون اتنابی که باز بلاغیا ازش بحث می‌کنن و هم. یعنی مساواتی که اونها ازش بحث می‌کنن الف لامش برای این ایجاز و اتناب و مسابت خب لازمه که اولا بدونید یک این بحث ایجاز اتناب مساوات جایگاهش و مورد بحثش عبارت است از کلام و در مفردات ما این بحث رو به قول خودمون داریم اما اصل موضوع برمیگرده به قول خودمون به کلام یعنی ایجاز و اتناب و مساوات نوت درصد بحثش برمیگرده به کلام یه جاهایی میگیم اینجا این کلمه ایجاز داره ولی باز اونجا میگیم این کلام دارایی اجازه اونجا هم پس بگیم اصلا ایجاز و اتناب و مساوات معهد اون محل مورد بحثش کلامه اگر یه جایی هم ما یه مفردی رو گفتیم بفتیم این مفرد درش ایجاز واضح شده و چون اون مفرد در اون کلامه پس اون کلام رو میگیم درش ایجازه نمیگیم این مفرد درش شید درست سبب ایجاز در اون کلام این مفرده اما اون کلام دارای ایجازه پس اینطور طور بکنیم که ایجاز و اتمام و مسابات از عوارض کلام درس این یه مطلب مطلب دوم شما اینو قبلا من تو بحث خبر و انشا هم گفتم ما یه نسبت ذهنی داریم بعد اون نسبت ذهنی ما تبدیل میشه به نسبت کلامی و تلفظ میشه حالا اون نسبت کلامی اگر خارج و واقعی داشته باشه که باش احتمال مطابقت و عدم مطابقت بده لذات میشه کلام خبری اگر این نسبت کلامی با کلام من ایجاد بشه و واقع و خارج نداشته باشه میشه انشا که خودشم به دو دسته انشای طلبی و غیر طلبی تقسیم میشه بحث قبلی ما درست شد ببینید نسبت کلامی یعنی اون که من میخوام بگم اون حرفی که تو دلمه تو ذهنمه اون میاد اول تو ذهن من شکل میبنده که چی بگم یعنی الان میخوام با شما صحبت کنم اون در ذهن من نقش میبنده من اون رو اراده میکنم میچینم بعد ذهن من به زبان من و هنجره من این دستور رو میده که این رو بکن این نسبت ذهنی نسبت درونی مقصود معنای مافز زمیر متکلم با کلامش تلفظ میشه نسبت ذهنی با نسبت کلامی خب حالا نگاه کنید به اونی که تو ذهن تشکیل میشه و نسبت ذهنی هستش، و غیره ما میگیم معنا، مفهوم، آ، مقصود اون معنا، و مفهوم و مقصود رو ما با چی میفهمیم؟ میفهمونیم با کلاممون، با لفظ. پس ما یه معنا داریم یه لفظ داریم معنا از انا یعنی معنا بعضی میگن مخفف معنی هستش یعنی مقصود بعضی میگن میگن اصلا خود معنا مستره مثل لفظ که خودش مستره اون به معنای معنی این بهتره این به معنای ملفوظ یعنی چیزی که تلفظ شده مستر به معنای اسم مرکب پس معنا یعنی مقصود لفظ یعنی ملفوز یعنی چیزی که تلفظ شده ما یه معنا داریم یه لفظ داریم درست شد معنا رو می فهمیم و درک میکنیم لفظ رو می شنمیم. از لفظ پی به معنا می بریم از لفظ پی به معنا می بریم معنا در واقع مثل مغز گردوه و لفظ مثل پوستشه با قول بلاغیه ما وقتی این رو میشکافیم آه پی به اون معنا میبریم اون معنا و مغز گردست و همه کار اونه لفظ قادم حالا یه نسبتی بین اینجا حرفه یه نسبتی بین لفظ و معنا هست نسبت گاهی اوقات این نسبت مساویه میگیم این چی میخواسته بگه میگه میخواسته اینو بگه میگه خب چی گفته میگه اینو گفته نگاه میکنیم این الفاظی که آورده نسبت با رسوندن اون معنا نکمه نزیاده یعنی چی نکمه نزیاده یعنی زیاد نیست بین دلیل که ما اگه یک کلمهشم برداریم مقصود اون ناقص بشه. قصدش رسوندن این پیام بوده با این الفاظ بیان کرده جوری که اگر ما حذف کنیم این اخلال به معنا میشه. اگر بیایم یه چیزام اضافه کنیم بازم مازاد بر معنا میشه. مقصودش این نیست. این خارج از مقصود آورده شد یعنی اگر معنا مقصود فرض بفرمایید که یک کیلو بوده لفظ هم یک کیلو براش آورده شده نه یک گرم بیشتر نه یک گرم کم اگر مثلا فرض کن اون یه متر بوده این هم یک متر ست سانتی متره نه یه سانت بیشتره ما اینو مثال زدم به وزن و مساحت که به ذهن بیاد ولی معنا و لفظ نه جز موضوعات هست و نه جز ممسوحات مم. معنا و لفظ درک کردنی و شنیدنی هن. ولی میگیم معنا اینو ما بگه مقصود همیده. اگر لفظ و معنا با هم دیگه مساوی باشه این میشه مساوات مساوات و اکثر کلام های ما از این قسمه نه زیاده میگیم نه کم میگیم همونی رو که مقصودمون هست با الفاظ مطابق بیان می‌کنیم معیارشم اینه اگر ما چیزی رو حذف کنیم قسمتی از معنا از بین میره که مقصوده و اگر چیزی اضافه کنیم معنایی به کلام اضافه شده که مقصود گوینده نیست مساواته نگاه کنید توی عبارت قاعده المصاواتو یعنی مساواتی که نزد بلاغی هست انتکون المعانی به قدر الالفاظ معانی و مفاهیم مقصودات و گوینده به قدر الالفاظ به قدر ملفوزات یه الفاظ به قدر المعانی الفاظی که بیان شده اندازه لا یزیدوها لا یزیدو بعضوها الابعزه و لا ینقصو بعضوها هم بعضه نه زیادی داره بعضش بر بعضو دیگه ملو زیادی نداره نقصم نداره دیگه مساواه این قسم گفتیم از همه بیشتره و ما این رو در کلام زیاد می‌بینیم. یعنی اگه صد تا کلام داشته باشیم شاید شد هست هفتاد تاش از نوع مساواهده چون انسان قصدش اینه که همونی که تو مقصود و نظرش هست رو بیان کنه نمیخواد انرژی زیادتر مصرف کنه بیهودگویی کنه نمیخواد از معنا و مفهومی که مد نظرشه چیزی کم بذاره حالا امثله مثال میزنه چهار تا چما میتونید اینها رو ببینید قالت حالا خداوند تعالی فرموده و ما تقدمو کن من خیرن تجدوه و اندالله ما تقدمو ما مفعول تقدموست ما شرطی است یعنی ای این تقدمو هر چیزی شما پیش بفرستید تقدمو مجزوم شده فعل شرطی لنفس کن بر خودتون به نفع خودتون هرچی پیش بفرستید من بیان میکنه من خیره من خیره متعلق با عامل مقدر حال است از داره ما در حالی که کار خوبه یعنی هرچی از خوبی ها هر کار خوبی هرچی میخواد باشد صداقت امانت داری کمک به دیگران هر کار خوبی و شما تقدموله انفاسه کن برای خودتون پیش بفرستید تجدوه و الله، خواهی یافت اون رو نزد خدا ند. اونو اون رو در آینده دو. یعنی میخواد بگه هیچ کار خوبی از بین نمیره مسلمانان مؤمنین شما بدونید هر کار خوبی بکنید جزء رو شما خواهد بود اینو گفته هر کدوم از این کلمات رو شما کم کنید مقصود ناقص میشه چیزی هم بخواید به این اضافه کنید مازاده بر مقصوده همه کلمات لازم اینجا مساوات ما تو قد مولا من خیرن تجدوه انذا دو و قالت تعالی باز خداوند تعالی فرموده ولا یی و المکر الا إلا لا یهیقو یعنی لا یهی احاطه نمیکنه در بر نمیگیره المک و سیه سیه از سو بعد هر مکرو رو بدی که باشه احاطه نمیکنه مگر اهلش شد اهل اون مکه سییرون. لا یهیق و المکه الا لا یهیقو میگه من قوله هم حاق به شیعو ازا احاتمی که منم این معنی الان المکروفایل لا یهیقو از سیه صفتش لا استثناء به اهل هی جار و مجلور متعلق به لا یهیق استثناء مفرق حسر احات شدن احات کردن مکر سیه این صفت مکر سیه احات کنه این صفت منحصر شده در اهل اون مکر یعنی کسانی که چاله بکنن این چاله کندن خودشون رو دربار می دیره خب لا، یه قای المکر رو یکی تو ممکنه که یه موقع به ذهنش برسه این المکر رو سیه کلمه سیهش اضافیه خب مکر دیگه گم لا یهی قول مکروه لا بعد نه نه نه بعضی از م... مکروه یعنی کار پنهانی بعضی از مکروه مثل که شما مکر میکنید با دشمن یعنی در جهت کاری که میخواید بکنید فریب میدید این فریب فریب سیعه نیست این لا یهی قطب و سنت الهی لا به نیست به دشمن بیرسه اما اگر اومدی مکر کردی با یک کسی که مؤمنه این میشه مکر سعیه درست شو؟ مکر حرام و بال گردن نمیشه مگر اهلش پس درست هیچ کلمه ای نه زاید اضافه است زایده و نه هیچ چیزی کمه هر چی قرازم داشته بسرم میخواسته بکنه بیان کرده که فقط اهلش رو میگیره با غیر اهلش کاری نداره یقه خودشون میگه چاه که کنده خودش میوفته توی شاه این دو سه و قاله عن نابغت و از زبیانی نابغه زبیانی از شعرهای جاهلی گفته این جزء اعتزاریات نابغه است جز اعتزاریاتشه که به نومانه به منظر داره اعتذار میکنه عذرخواهی میکنه از اینکه رفته و قصانیگین رو که طرفهای مقابل مناظره بودند مد کرده بید. بعد این نومانه به منظر تهدیدش کرده میگه منو تهدید نکن تهدید تو برای من کشنده است میگه فعن نکه کل لیل. تو مثل شب میمونی الذی هو مدرکی شبی که به من خواهد رسید منو درک میکنه منو میگیره و این خلتو این وصلی است اگر چه من گمان کنم یعنی این گمان نکنم این وصلی است به طریق اولا اگر چه من گمان کنم انل المنتعا منتعا یعنی مبتعد محل دور شدن انکه واسو دور شدن از تو خیلی وسیعه یعنی میشرع یعنی مثل کسی که الان تو روز اول صوبه میگن شب داره از این طرف از طرف بقول خودمون مغرب میاد ها داره غروب میکنه خورشید و شب داره میرسه چی میگه؟ میگه حالا بگه بابا بگیرم من مگه نمیخواد تاریکی از این طرف بیارد خورشید تاریکی تفایید من فرار کنم از دستش مگه هر چقدر تو بری شب میاد تو رو میگیره تاریکی تو رو فراغ میتری تو از دست تاریکی شب فرار کن و این خلطه خلطه اندل منتقه انکه واسه چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه که تحدید تو فراغیره کسی نمیتونه از دستش دره حتی اگر فکرم بکنه که میشه در رفت فکر باطله امکانش نیست یعنی تو من تهدید کردی تهدید تو کشنده هست خب، یا با مثالم فهمونده هیچ کدوم از این کلماتیم که وجود داره رو شما نمیتونید هست کنید اضافه هم لزوم نداشته بیاره پایین میگه المنتعا موضع البعد انتعا یعنی ابتعده از نعا یعنی بعوده موضع البعده و هوه اسم و مکان من انتها انه انتعا انهو ای بعوده که بهتر بگه ای افتعده چون باب افتعده نعاش به معنای بعود است با خاطبا و از زوبیانی مرده خطاب قرار داده انابغ زوبیانی انابغتو از زوبیانی نعمان ابن, ابن منزر رو و یشبهوهو فی حال سختهی به و تشبیه کرده اون رو در حال خشمش به شب فی انهو یع امو موتنن در این که او فرا هر موتنی رو و زال کل ملک نومان و این به خاطر وسعت ملک و سرزمین نعمانه و بستت نفوزه و اینکه نفوزش خیلی وسیع بوده فلا یفلوت منه ها در نمی از او عهد آه هیچ که از دستش در نمید. با این بیتین رو چهار رو نگاه کنید شعر طرفت ابن عبد از جاهلیه میگه سطوب دی لکل ایام ما کنت جاهلا م... کنت جاهلا آید سله منصوب بوده هست شده یعنی بوده ما کنت جاهلهو جاهلا ایاهو چیزی که تو نمیشناختی اون رو سَتوب دی لکل این روزگار به تو نشون خواهد داد. بن هرچی نمیدونی مو امر الان بر پنهانه سب کن روزگار همه چی رو پتاش میندازه رو هم. الان شما نگاه کنید دربار پادشاهان قدیم اسرار درونی اونها هم همه بعد از مرگ و بعد از چیز اونها فاش شد روزبار چیز رو نمی پنهان بود سطوب دی لکل ایام ما کنت جاد و یعطی که به جای ستوب دیست و یعطی که بله اخبار اخبار یعنی تمام خبرها یعنی که به اخبار یعنی تمام خبرها رو برای تو میاره ملم تو زو بدی من تو زو یعنی من تو زودد هو آیه کسی که تو زاد و توشه بهش ندادی مفتو مسلم خبران رو ولاد میاره کسی که تو هیچ خرجی بهش ندی آخه قدیم اینطوری بود دیگه کسانی مثلا میرفتن سفر مثلا میرفت حج بعد میرفت مثلا باید یک سال طول میکشید برو و بیاد بعد نگاه میکردن میدن دو سال شد نایمد نایمد دیگه خب این حتما یه چیزی شده نیامده، لذا میامدن به یک کسانی بودن اینها آدم های قویی در پیمودن راه بودن و راه بلد بودند. و چهره شناس و اینها بودند به اینها میآمدند زاد و توشه و پول و این چیزها میدادند و بهشون میگفتند مثلا ما یه پدری داشتیم با این خصوصیات و این شکل و این قیافه و این نام رفته بر حج بعد نی آمده. اون موقع باشه من میرم خبر ولو میآمد راه میافتاد از همین مثلا تهران که میرفت بره تا کرمانشاه و بره تا داخل عراق و بره تا عربستان همینطوری ایک کتی که سآل می موارد رو پیگیری می کرد ببینه کجا این هست که اوقات پیداش می کرد طرف پولش رو زدن آنجا داره کار می مجبور شده بمونه مریض شده مرده حالا در هر حال خبر می آورد از گم شده اینا رو بهشون زاد و توشه میدادن پول میدادن اینا میرفتن خبر می, می آوردن مثال من زدم میگه روزگار هر چی را تو نمیدونی به تو خبر میده و خبرها رو برای تو میاره کسی که تو هیچ خرجی براش نکردی زاد و توشه بهش ندادی یعنی سعب کن دندلو به بزار همه چی روشن میشه ماه پشت عبر نمیمونه واضح میشه خب طرفت ابن عبدی گفته هیچ کلمه رو شانه ابن حذف حضف کنید هیچشم نمیخواد اضافه کنید همه چی به اندازه است به اندازه که میخواست مقصودش رو بیان کنید میگه منلم تو زود پایین میگه ای من تو اتهی زادن کسی که شما زاد و توشه بهش ندادید و زاد تعامل مسافر زاد تعامل مسافر یقول این اشتر اگر زنده بمونی، فسد تو علم و کل ایام و تکن تعلم آگاه خواهد کرد روزگار تو رو به چیزهایی که نمی‌دونی. ستو علمو که ستو علمو که علا ایامو مالم تکن تد خبر به تو خواهد دار ستو علمو که یعنی ست اخبرو که به تو خبر خواهد دار ایام چیزهایی رو که تو نمیدونی و یعطی که به لخبار و خبرها رو برای تو میاره من لم تو توجه و بی دلبها. کسانی که تو اونا نفرستدیشون دنبال این که خبر رو دارد همه چی دستت میاد سب کن ستوب دی لکل ایامو ما کنت جاهلا ما مفعول ستوب دی و یعتی که اخبار من این منم فایله یعتی کس. لم تو یعنی لم تو که مشخص حالا بحثو ببینید یختار ل تعبیر، اما فی نفسهی طریقا منتروغنسلاس اختیار میکنه شخص بلیغ آدمی که اهل بلاقته اختیار میکنه لتعبیر برای بیان اما فی نفسی برای بارد که آوردن از آنچه که در درون خودشه در فکر خودشه در زمیر خودشه تو دل خودشه اختیار میکنه طریقا من طرق سلاست یه راهی از این ستا راه فهوت هارتن یو جسد. اون یه اوقات ایجاز به خرش میده. میگیم یعنی لفظش کمتر از معناست. حالا خودش صورت های مختلف داره. و تارتن یوسف بود. و گاه اوقات میکنه. یوسف یعنی یوتنه بو. میگن اتنابم میگن. و گاهی اوقات اصحاب میکنه لفظ بیشتر از منوست یه چند کلمه چند عبارت اضافه است یا حالا میگیم اون اب خودش انواع احسان داره و تارتن یعطیبله عبارت بین بینه و گاهی اوقات میاره عبارت رو در حالی که متوسطه بینه بینه یعنی متوسطه تن حاله. این لفظا مرکب و بنابراین میاره در حالی که متوسطه یعنی نه زیادی داره نه کم داره نه اجازه نه است. البته اینا چجوری میاره؟ یعنی مثلا صبح تا ظهر اجازه میگه ظهر تا شب اتناب میگه شبم مثلا تا نصف شب که میخواد به خاطر نه بستگی به مخاطب داره. یه جا نیاز کلام رو ایجاز بیاره یه جا لازمه کلام رو اتناب بیاره یه جا لازمه کلام رو مساوات بیاره حالا هر کدوم اگه سر جاش بیاره میشه بلیغ. اگر خارج از اون آورد غیر بلیغه. شما بهترین کلام موجز رو بیارید در جایی که باید اتناب کنید از کلامتون بلیه پس ایجاز اتناب مساوات خوبند بله همه شون خوبند به شرطی اینکه سر جایشون باشند بلاغت اقتضای هر کدوم رو بکنه باید اون را بود کدومش بهتره بیش بهتر نداره ایجاز سر جای خودش بهتره اتناب سر جای خودش بهتره مساواتم هم سر جای خودش پس بنابراین اینها شیوه های سخنند و این شیوه های سخن باید مطابقه با حال مخاطب انتخاب بشه و علا حسب ما ترتزی حال مخاطب و ید و علیه موتن الخطاب و ما رو موتن خطاب جایگاه خطاب ید و اونجا میکشه بعد موتن خطاب حال مخاطب رو در نظر بگیریم کلام رو طبقه بیاریم اگر طبقه اون آوردیم بسم الله همه چی درست اگر نه مطابق نبود خو ما اصلا بلیغ نیستیم ایجاز خوبه اما کجا خوبه جایی که مقام مقام ایجازه. مخاطب ایجاز مخاطب ایجاز ایجازه ولی اگر جای اون نباشه غلط قلط هست. ما بلاقت رو خوندیم آوردن کلام صحیح و فسی مطابقه با مختزای حال مخاطب خب این هر کلام صحیح و فسی هن باید مطابق مختزای حال مخاطب بشن بشه بلی ما انتخاب خیلی مهمه بعضی فکر میکنند که مثلا خلاصگوی ایجاز میپرسید ایجاز بهتره یا اتناب بهتره یا مساواد زود میگه ایجاز ایجاز خیلی خیلی نه همه جا که اجازه خوب نیست جاهایی از شما اگه اتناب نکنید از این کلامتون به دل نمی نشینه گوشش زیگوش از بلاغت ثابت همینطور تو مگر لذا علاه حسب ما تقدزیه خالق مخاطب و یادو الیه مالتنور خدا و نوید و هناآن نشره غازه تلوافس زلاسر و میخوایم اینجا شرح بدیم برای تو این راهای سگانر و سنبده و بالمصابات اول مصابات رو میگیم لعنه على اصل و علا زیرا این اصلیه که بر پایه اون قضاوت میشه میگیم لفظ اگه مساوی با معنا هست میشه مصابات خب حالا بعد برمیگردیم میگیم اگه لفظ کمتر از معنا میشه ایجاز اگه لفظ بیشتر از معنا میشه اتناب با شرایط شرایط در واقع مساوات وسط ایجاز اتنام افراد و تفرید داشت لفظ کمتر نسبت به معنا میشه ایجاز لفظ بیشتر نسبت به معنا میشه اتنام مساوی باشن با هم میشه مساوات میگه تعتی الامسلتون تعمل الامسلتون متقدمتون نگاه کن به این مثال های گذشت تجدل فیها به قدر المعانی نبینی که الفاظ توش به اندازه معناست و لو لوحاولت رو دلیلش اینه و لو لوحاولت یعنی سعیت اگه تو تلاش کنی انتزیده فیها لفظه بیا یه چیزی بهش بخوای اضافه کن لجاعت زیاده تو فضل، اون زیاده فضله یعنی زائده مازاد میشه اضافه گویی میشه. او عرب تا اثبات کلمت هم. یا بخوایی بیا یه چیزی حذف کنی یه کلمی رو حذف. لکان زالکه اخلال هم این اصلا اخلال به معنا میرسون یه قسمتی از مقصود بیان نشد. فعل الفاظ فی کل مثال مساویتون للمعانی الفاظ در اینجا مساویه با معانی و نزالی و یوسف ما عده کلام علاوه نحوه و به خاطر همین نامیده میشه آوردن کلام بر این شکل مسابقه اگر کلام رو ما به این شکل بیاریم بهش میگن مسابقه پس مسابقه رو ما فهمیدیم حالا اگر مسابقه رو فهمیدیم میریم سراغ ایجاز. خوب تو زهن داشته باشید درست شو بله همینطور دیگه دیگه ما وقتی قواعد رو توضیح میدیم شما میتونید نظیر خوش رو بفهمید درست خب درست است حالا نگاه کنید بله همینطور دیگه قیاس کردیم قیاس تونم درست نگاه کنید ایجازو. ایجاز کلمش افجاز بوده. افجاز. ساکن که مکسور قلب بیام شده ایجاز. مازیش اوجزه. با واوه. مزارش یوچزه. مسترش ایجازه. برست شو؟ پس ال اجازه یعنی اون ایجازی که مد نظر ماست. خلاص گویی که ند نظر ماست ایجازی که مد نظر ماست همه ایجاز نگاه کنید ایجاز من یک تعریف براش میکنم بعد دیگه راحت میشه شما میتونید اینو بفهمید ایجاز عبارت هست از این که لفظ نسبت به معنا کمتر است. لفظ نسبت به معنا بگید کمتره مثلا اگر معنا یکیلوه لفظ 750 گرم اومده خب اون 250 گرمی که لفظ برش نیومده اون میشه اون باید حتما فهمیده بشه اگه فهمیده نشه که اصلا ایجاز نیست پس ایجاز کم بودن لفظ نسبت به معناست به ای شرط داره به شرط ایضاه افساح تبیین اینا همه یکیا به شرط ایضاه یعنی کاملا واضح باشه اون جهگرمه فهمیده شد اون مقداری که از لفظ تو کلام کمتره و دیده نمیشه اون مقدار لفظ ها اون فهمیده میشه از معنا نانوشته ای که خوانده می شود فهمیده می شود به شرط ایضاح به شرط افشاء تو بعضی و افساه یکی اوزه و افسحه یعنی آشکارا بیان و به شرط تبیین تو بعضی جاها میگن بینه یعنی روشن کرد حتی تو بعضی جا میگن میگم به شرطل ابانه ابانه یو بینو یعنی ازهره خلاص هر کدوم از این کلمات باشید این دو عبارت های آقایین بلاغی ها از ایزاه و افساه و تبیین و ابانه شرطشه خب یعنی اگر شما حضب بکنید و از کلام فهمیده نشه یعنی باید جبرئیل از آسمان بیاد بگه اینجا عبارت کمتر از مقصوده و این نو اون اصلا ایجاز نیست پس ایجاز کوتاه بودن لفظ نسبت به معنای مقصوده به شرط ابانه و افساه و تبین و ایزاه نگاه کنید توی علی اجازه جمع المعان المتکاسره جمع کردن متکلم معانی زیادی رو المتکاسر تحت اللفظ قلیل در زیر لفظی که کمتر از اون معناست اما شرط داره معل ابانه و لفظاه به شرط این که بگید عبانه داشته باشه افساح داشته باشه ایزاح داشته باشه تبیین داشته باشه یعنی محل عبانته یعنی عبانته کلام بل افساح یعنی افساح کلام عبانته معنا افساح المعنا معنا کاملا معلوم باشه لفظ درصو کم تره یعنی معنا 100 درصد لفظ 750 گرم معنا یک کیلو یک کیلوه فهمیده شه. بله ابانات و انفسا پس شرط در اجازه وضوعه اینه که ما کامل اخلال به معنا باشیم اخلال به معنا بگید نشود حالا ایجاز رو فهمیدیم الفاظ کمتر از معنا شرط ابانه و افساه و ایزاه و تبیین اما این رو هم توجه کنید که ایجاز دو قسمه یک داره دو داره ایجاز نوعی یک حالا آیا این دوتاش قابل جمع هم هست؟ یعنی هم یک توش باشه هم دو ولی ممکنه یه جایی هر دوتاش باشه ولی وقتی هر دوتاش هست معمولا اون دومی رو ذکر میکنن دیگه نمیگن هم ایجاز نوعی یک یکیش رو بگن کفایت میکن حالا تو متن خواهیم رسید و من تذکر پس مانعت الجمع به قول آقایون نیست. ممکنه یه جای هر دوتاش باشه. خود خب اجازه نوع یک چیه؟ اجازه نوع اجازه حذفه اجازه حذف ایجاز نوع دو چیه؟ ایجاز قصر قصر هم نخونید ها ایجاز قصر اون قصر مال باب قصر خب ایجاز حذف نگید به خاطر این که هم وزن بشه با حذف خونید قصر بلکه ایجاز قصر بس چند نوع شد دونم نوع یک ایجاز حذف نوع دوم اجازه گزر خود اجازه حذف چیه اجازه حذف عبارت از از حذف چیزی از کلام به شرط اینکه اون محذوف به شرط اینکه اون محذوف فهمیده بشه معناش باش فهمیدهش کمتر حرف زدیم ولی معنا و مقصودمونو فهموندیم ای ایجاز حذفه ایجازی چی گفتیم حذف یا خوب ایجاز حذف چی لازم داره قرینه صور قرینه باید باشه که تو معنایی که مد نظر ما بفهمید حذف بدون قرینه میشه معما حذف بدون قرینه میشه چی چی بگید معما با جبرئیل از آسمان بیاد بگید که اینجا ای چی حذف ولی ما نمیفهمیم حذف باید همراه با قرینه باشه ابن مالک میگه و حذف ما یعلم جایزون حصفه چیزی که معلومه یعنی به واسطه قرینه اون جایسه بلا یه چیزی باشه قرینه نمیگن یه بنده خدای شعر گفت گفت تو رحمان و رحیم یقین دارم که شیطان و رجیم گفتن ای باقا چه شعری بود گفتیم به کفت نزدیکه این چه عرفی بود زدیم گفت نه منظورم درسته این چی بود؟ گفت اینه خداوند تو رحمان و رحیمی یادین دارم خالق شیطان رجیم یعنی با اون که تو رحمان رحیمی خالق و شیطان رجیم هم هستی آفه درستی خب بعد مضاف هست شده مزافن لجیم گفت اون این مضافح هست شده قرینه نداره تو وسعل قریته قرینه وسعل بود بود اهل القریه مضافحه شده مضافنه. اون درسته اینکه قرینه نداری ما از کجا این خالق رو بفهمیم کی میتونه بفهمیم پس حصف نیازه به قرینه داره حالا حصفه. هر هرچی میخواد باشه, باشه باید ما قرینه رو بفهمیم قرینه هم قبلا گفتیم میتونه لفظیه باشه میتونه غیر لفظیه معنویه حالیه باشه قرینه با درسته اگه با حصف با قرینه بود عبارت کوتاه میشه معنای خودش رو میرسونه میشه اجازه حذف میشه ایجاز حذف می درست شد؟ میشه اجازه حذف حالا نگاه کنید اجازه حذف از کم شروع میشه تا زیاد گاهی اوقات یه حرف هست شد گاهی اوقات یه کلمه هست گاهی اوقات یک جمله هست شده گاهی اوقات چند تا جمله هست شده قرینه اینا رو به ما میگید. معناشون هم فهمیده میشه چون با حذفش بافد پس گاهی یک حرف گاهی اوقات یک بگید کلمه است گاهی اوقات یک جمله است گاهی اوقات چند تا جمله است اینا همه از اقسام اجازه بگید حذف درست شد توی قاعده نگاه کن میگه نوعان دو نوعه اول اجازه حذف میگه ج قصر رو میگه بعد اجازه حذف درست شد حالا من توی عبارت ابتدای اجازه حذف گفتم بعد اجازه قصر رو میگم فرقی نمی‌کنه اجازه حذف کدومه شوین راحت تر میتونید بفهمید منظور درو میگه ور یکون به حذف کلمت به حذف یک کلمه باشه حالا اون کلمه ممکنه حرف باشه ممکنه اس باشه ممکنه فعل باشه او جملته یا ممکنه که به حذف یک جمله باشه او اکثرا یا بیشتر از یک جمله او اما شرطش اینه اجازه مع قرینت تو عین المحذوفه با وجود قرینه ای که محضوف رو مشخص میکنه اگه قرینه نداشته باشه میشه ما هم ما میشه چیستان قلط. اگر توی عبارتتون نگاه کرده باشید یعنی اون که من گفتم گفتم از حصف یه حرف شروع میشه بعد حصف یه کلمه بعد حصف یه جمله بعد حصف یک بگیریم چند تا جمله اشم کلمه رو گفت جمله رو گفت چند جمله اون حرفم هست حرفم هست کو یوغاد یه حرف هست شده مثل مثلا واللیل ازا یسر تو سوره الفجر الفجر و وَلْ لیال العشر و واللیل ازا یسر یسر یسر چی بوده یسری سرا یسری این به خاطر اینکه سجع درست بشه ممباب سجع خود اون سجعه برین است یسری دیگه بگید تلفظ نمیشه وله سرا یسری لام لاملفل حس شد یه حرف حس شد شد میگن چی بگید ایجاز در این حد خیلی خیلی کمش حد یک حرف گای آقا دیه کلمه هست میشه حالا اون کلمه ممکنه حرف باشه اینجا دیگه حرف اصطلاحیه حرف حروف عبجرد مثل اون که من گفتم نیست حرف باشه ممکنه فعل باشه ممکنه اسم باشه میشه کلمه گای آقا هست میشه گای آقا چند تا جمله هست میشه اما همه اینها نیازمنده به قرینه هست اگر قرینه باشه حصف جایزه و اینها مجایز نیست این مهندسی سخن خیلی چیز مهمیه ها نگاه کنید ایجاز و حسف و یکونو به حذف کلمت او جملت او اکثر که من قبل از حتی کلمت گفتم به حذف حرف او کلمت او جملت او اکثر معقرینت تو اینول محصوف حرفم گفتم حروف ابجد مثل و لیل ازا یز. پایین نگاه کنید آشیه یک میگه کلمهی که بگید حذف شده اما حرفون یا حرف و اما اسم یا اسم و گاهی وقتا ممکنه فعل باشه الان نگفت میگم من زره بکرم کی تو زده؟ میگه زیدان یعنی زره و نی زیدان لَاِنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ من سماوات وَلْعَرْزِ و اللَّهُمْ یعنی خَلَقَهُنَّا الله یکی فیل هست حالا گفته که فیل یا حرف هست شدش یا حرف هست شد. یه لای نافیه یه انمستریه ی حرف جر وقتار موسا قومهو سبعی نرجلن قومهو منصوب به نظر قافز بوده من قومهی دیگه با میمسان بزنیم حرف هست شده فیل هست شده گفتیم لَا اِن من مَنْ خَلَقَ و سماواتو وَلْعَزْ لَيَهُولَنَ الْلَا یا اسم هست شده اسم ولی اسم المحضوب قد یکونو مضافن اسم محضوب گایی قد مضافه این خیلی زیاده مثل وسعل القریت اللتی کن نافی ها که خوندیم تو بحث مجز یعنی وسعل اهل القریت مثل جا عرب بکه و الملک و صفن صفا جا عرب و که گفتیم یعنی امرو رب بیک اون موصوفن گایی قد ممکنه که اون موصوف باشه هست شده باشه صفتش مثل اذکروا الله كثيراً. اذکروا الله كثيراً. که چی بوده ذکرن كثيراً تو مفعول مطلق خوندید مفعول مطلق به نیابت. موصوف حد شده صفتش میشه. مثل مؤمنون در قرآن از مؤمنون خیران من مشرکین. یعنی عبد المؤمنون خیران من عبدن مشرك. موصوف حد شده صفتش میشه. چی او صفتند گای اوقات اونی که حض شده صفته این کم تره فیلی کمه ولی هست هست مثل تو سوره کهف مثال میزنم تو سوره کهف میگه وقتی خیزر سواری کشتی شد با موسا خیزر کشتی رو سوراخ کرد وقتی سوراخ کرد موسا اعتراض کرد که این چه کاریه میکنی الان مردم رو میکنی اون بعد توضیح داد گفت به این دلیل این کارو کردم که یه پادشاهی بود کشتی ها رو نمی و من خواستم که کشتی اینها یه عیبی داشته باشه اون نگیره این کشتی تو دست این ها بمونه باش کار کاسبی کنه بعد میران خودشون سوراخشو درست میکنن این من کمکشون کردم با این کار چون اونا که اطلاع نذاشتن که اون تو ساحل وایساده میگیره سالم میرفتن کشتیشون مصادره میشد من این کارو کردم که کشتیشون مصادره نشد اونجا میگه و من وراءهم آیه قرآن سوره که و من وراءهم ملکن یا کل سفینتن بسبا غصبا با قین و صاد یعنی قاصدا میگه و من وراءهم پشت سر اینها بود یعنی این گسه به قول خودمون تو سرنوشت اینها بود پادشاهی که یعخذ این صفتو داشت میگرفت کل سفینتن قسوان هر کشتی رو بزوف. به زور به خب اگر این هر کشتی رو میگرفت به غصب خب این سوراخش بکنه اون از کشتی بودن که ساقط بگید نمیشه ای بکنه کشتی است پس این منظورش اینجا چی بوده یا و کل سفینتن؟ یعنی یا و کل سفینتن سالمتن یا صحیحتن اصلا هر کشتی سالمی رو به زور می گرفت بولش هم نمی این اصلا از معتن فهمیده می شودید ترجم میگه من سوراخش کردم تا نگیرن ازش پس معلوم شما اون کشتیه سالم و صحیح رو نگرفته بوده کل سالمت صحیح صحیحته قصب کم نسبت به صفت موصوف ولی هست نو مثل آیه بازم من مثال دیگه بزنم که دخل بتونید بفهمید خداوند قوم موسی رو به خاطر خطایی که کردن مجازات کرد. گفت شما باید گاوی رو بکشید. اونا هی اومدن گفتن این گاوه چه رنگی باشه چه وزنی باشه چه شکلی باشه؟ به سوال کردن. خدا هم قید زد. قید زد. امبارشون سخت‌تر شد. در که اگه اولش میرفتن یه گاوه چلاق مرده‌ای رو چلاق حالا از وارد در لفتی رو میگشتن تمام میشه قضیه تمام میشه هی که سوال کردن مثل گاوه و اسرائیل که میگن همینه سوال کردن هی ام براشون مشکل خدا میگه لا تسالو عن اشیاء انت تلکم تسق کن یعنی هیچ چیزا سوال نکنید چون اگه واضح بشه براتون ام سخت میشه چون که لازمه سوال کو بعد که دیگه خدا حسابی قید و بند زد یعنی که باید می رفتن می پیدا کنن اون گابر رو و منحصر شد در یه دونه گاب اونم رفتن یارو دیگه با قیمت صد برابر می بود. درست شد؟ اینجا برگشتن به موسا بفتن الانج اتبل حق بفتن موسا انج اتبل حق الانه رو مقدم کردن مفید حسره یعنی فقط الان گذشته نه ها پس دیگه الان فقط نه چه حق حق و بیان کردی حق مطلب رو الان گفتی خب اگر منظورشون اون باشه که الان حقو گفتی و گذشته حق نمیگفتی یعنی باطل میگفتی تو دین کفر اصلا اونها که مسلمان مؤمن بودن به موسی پس منظورشون چی بود؟ از این الحق یعنی الحق الواضح یعنی الانجه تا بالحق الواضح یعنی الانجه تا بالحق الواضح موسا الان حق روشن گفتی یعنی قبل از این حق میگفتی اما روشن نبود ما نمیفهمیدیمش الان که حسابی قیدو بند زدی معلوم شد روشن شد ما فهمیدیم بس بگید قید چقدر تاثیر داره؟ حرص شده این صفت و از معنا هم فهمیده بشه درست شد این اجازه حصف که کامل بروراتون بود میریم سر اجازه قصر اجازه قصر چیه؟ عبارت هست از این که چیزی از کلام حصف نشده از عبارت چیزی حصف نشده اما خود عبارت به گونه ای و معانیش وسیعه میشه صد تا معنا از این فهمید بیش از این الفاظش ازش معنا فهمید نگه اجازه قصر جاهز نسبت به امیر مرید نیست یعنی زاویه هم داره در کتاب خودش جاهز تو بلاقت میگه اگر نبود جز این یک کلمه یک عبارت از امیر من باز میگفتم امیر المومنین امیر بلاقت نهج بلاقه یعنی شیوه و میگه بازم میگفتم امیر سخن اینه یه ای از امیر گرفته اون کدومه؟ میگه خیلی یه جمله ایجاز قصر داره میگه این جمله که ایشون گفته تخففو تخففو فیله هم تخففو یعنی سبکشید. شد تلحقو فعل مزاره در جواب هم مرزم شده تلحقو میرسید میگه تمام موفقیت بشر ادرد امر دنیا و آخرت تو همین دوتا کلمه است تخفف و تلحب یعنی سبوکشید میرسید میگه تو هر کاری شما نمیرسید مشکل دارید امر برات سخت شده ناموفقی به دلیل اینکه یک سری موانع داری بند و بیلهایی به پاد بسته موانه داری اون موانه نمیگذاره از دست موانع راحت شو، سبک شو، تلحقو میرسی میرسید به همه خواست هر هرچی میخواد باشد هر کجا انسان موفق نیست چون موانع رو برطرف نکرد موانع رو برطرف کن به تمام خواست حالا بشین و تفسیر کن میتونین این قضر موفقیت‌های مادی، معنوی، اخروی، دنیوی، همه ای اینها اگر انسان بهش دسترسی نصیب پیدا نمی‌کنه به دلیل اینه که موانع رضائل نکرد، مشکلات سر جای نمیرسه تخفف و طلب. اجازه ده سر پس عبارت شد از اینکه بگید الفاظ حذف نشده خود معنا جمله کامله اما معانی بسیاری درش هست مفاهیم بسیاری درش هست این کلام خودش ده برابر الفاظش معنا ازش فهمیده میشه ایشا اجازه قصر حالا یه نکته‌ای داره فهم گفت اجازه و یکونو به تضمین ال عبارات به این که بر گرفته عبارات کوتاه معانی باز نوشته قصیره غلطه معانی کسیره معانی کسی تن به تزمین عبارات قصیرته معانی کسی معانی زیاده من غیر حصفه بدون که حصف باشه اگه حصف باشه میشه ایجاز حصف. چی حذف نشده اما معانی زیادی فهمیده شده از الفاظی که کوتاه خب اینو فهمیدیم اجازه به سره من غیر حصف. یه نکته گوش کنید ممکنه شما بگید که همین تو این مثلا تخفف و تلحوه درست شد بگید اینجا حذف است نهات گفتن که مثلا او معصوم شده در جواب شرط مقدر که تخففو برش دلالت میکنه یعنی اینطوری بوده تخففو ان تتخففو تلحقو ولی این درست نهات گفتن اینجا انشرتی و فعلشت هست اونا خواستن جزم و درست کنن ولی تو عبارت عربی هیچ کسی اینو ظاهرش نمیکنه ما منظورمون از حذف اون حذفاییه که با قرینه حذف شده و میتونسته بیاد یعنی میتونسته بگه که و من ورائهم ملکن یاخذو کل سفینتن سالمتن صحیحتن قشوان میگوفی چشکاری نداشت اما حذف کرد هنر خودشون نشوند که اینجا این کلمه رو میشه نگی و معنا هم به پس منظور از اینکه که من غیر حذفن یعنی حذف با قرینه ولی گاییوان مثلا فرض کنید که الان مثلا یه جاهایی هست که حذف با مثلا جد بعد از لولا لولای امتنائیه یکی ام؟ از جایی که خبر واجبه مثل لولا زیدون لعکرم دوگه. اگه زید نبود من تو رو اکرام بیم مثل لولا انتوم لکن نامونه یکی جایی که خبر مبتده واجبه کسی تا حالا خبر مبتده ندیده نهاد گفتد اینو ما جز اجازه حذف بگید نمیتونیم منظور از حذف اون حصف که با قرینه شما سیزه بگین ولی با وجود قرینه حذفش کرده اینجور که واجب الحذف و نهاد تغییر گرفتن برای اینکه عبارت درست بشه اینها رو ما باهاش کاری به عنوان اجازه حذف تو بلاغت نداره اجازه بسره و, و یکون به تضمین عبارات قصیرت معانی کثیرا که قلد نوشته من غیر حصف خب دیگه درست رو گفتم حالا دیگه بعد از این باید مثال بکنم چیز دیگری نداره نگاه کنید بخوا چند تا قصال زده شیشتا ستای اول مثال های ایجاز قصره ستای بعدی ایجاز حصفه اولیا اجازه ایجاز قصره بعدی ها حذف خصیب تبقیه اون چیزی که خودشم تو تحریف کن قال تعالی خدای تعالی فرموده الا آهای توجه کنید لهو الخلق و الامر لهو مقدم شده مفید هست. یعنی برای خداست فقط برای خداست برای شکری نیست فقط برای خداست الخلق هر گناه آفری در هستی وله و هر گونه دخل و تصرف و عمر هر اتفاقی در این عالم بیفته دخل و بشه به دست خداست هر گونه آفرین نیشیم باشه به دست خداست که این هستی آفرینش از تو تغییر دعبولات دیگه دیگه از این چیز نیست که خب پس یعنی همه چی دست خداست و اگه بخوای اینو تفسیر کنی ال خلق و ال امر شامل همه چی میشه هیچی باقی نمیشه توضیح اگر بخوای بدی این کلمه ای ال خلق و ال و این حسری که مقدم شده و همش مال خدا هست و مال هیچ‌کی نیست هیچ از عبارت هست نشده لا خبر مقدم ال خلق مبتدا مؤخر و, و امر شده چه حس نشده همه سر جای خودش خبر و یه جمله اسمی هست اما خیلی معنا داریم حالا نکته ممکنه شما بگید که این لحو متعلق رو به یه صحابتون موجودانه مرون که نوحات میگن خبر و بله اون هون صحابتون رو نوحات تقدیر میگیرن برای که عبارت رو از نظر چیزی درست کنن که جارو منش رو ولی اون هیچ موقع باز جبال دیده نمیشه ما اونو به عنوان اجازه نمیگیره. یه یعنی الان اجازه قصره. معناش هم توو فهمیده خیلی واسه. دو و قال صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خدا فرموده از ضعیف و امیر الرک. میاد میشه یه کتاب حقوق در موردش بنویسی. سه تا کلمه سی. از ضعیف و مبتدا امیر خبر الرک مضاف. رک یعنی کاروان. قافله. جماعت راکبین. میگه از ضعیف هر شخص ضعیفی امیر و رک، سالار اون جماعت قافل است یعنی توی جماعت هر جایی که هست معیار اون ضعیف اون نماز جماعت داریم امام جماعت دار نگاه کنه ببینه اگر پشت سرش کسی هست که پیره وظیفه رعایت حال اون ضعیف اولاست. نباید وارش حالون. درست شد؟ تو کلاس داری تدریس می‌کنی. خب یه عده تیزهوشان، یه عده پولاد، یه چند نفر هم هستن که یه مقداری ضعیف‌ترن. استاد وظیفه‌ش اینه که ضعیف رو رعایت کن در حدی درس بده که اونها بفهمن. اون بالایی هم بهتره. شانه را میری با یه بچه تو هر گامت 80 سانتر اون بچه هر گامش 20 سانتر تو یه قدم که برمیده اون 4 تا قدم بر خب پس اگه تو یه کیلومتر بری 1000 تا قدم برداشت اون 4000 تا قدم وقتا آیت کنی اون بیشتر خست نمیشه داری غذا میخوری با یه کسی دندون خود پیرمرد دندون نداره خوم نمیتونه بخوره دو سه نفرم تو جوان میتونه لقمه گنده گنده بگیره تونتون بخوره تو نمیتونه کار کنه همه کار هر کاری دیگه ما نمی‌دونیم که اصلاً چی‌جور میگه در تمام امورات که جمعی برگزار میشه حق ضعیف ملاک عرض رئیسونه امیرونه کاروان کاروان داره میره او یه دو جوانم میتونه یه صبح شب سوار عصب یا شطور بشن بره. اما یه پیره پیرم تو این کاروان هست این بیشتر از 3-4 ساعت نمیتونه روی اون اسفرستر رو شطور بمونه برای رایت ها همه این موارد هست از ضعیف و امیر و رکب رو نگاه کنیم و قیلن عربیه گفته شد به یه عرب بادیه نشین و که انداخته بود جلو و میبرد مالن مال یعنی شطور شوتال زیادی رو انداخته بود جلو می برد. ازش سوال کردند یسوق و مالا کسی شوترا زیادی رو انداخته بود جلو میبرد؟ ازش سوال کردند کردن. لمن هازل حاضل مالو این زیاد مال کیه؟ آقا این رو مالی کی داری میگی؟ فاقونه. قول لله فی یدی. این جنو مبتدا حصر شده. یعنی ها ذال مالو لله فی یدی لله فی یدی خبری. متعلّق به ثابت و موجودان خبری. اون ها مال مبتدا حصر شده اجازه حذف داره. اما اجازه قصرش چیزی اجازه حذف داره. اما اجازه حذفش رو دیگه ذکر نمیکنه و اجازه که سره خیلی پوششش بیشتر میگه برگشت جواب داد گفت این مال مال خداست مال خداست اما فی من امانت دارم چقدر از این میشه فهمید یعنی این آدم میگه من موحدم خدا رو قبول دارم هرچی هم هست تو دست ما امانته و تبقیه اون خدا میگه مصرف کنی و نمیتونیم خارج از اون مصرف کنیم و باید شکر نعمتی رو تو خدا داده بکنیم اگه شکرش رو نکنیم ممکن از امون بگیرد این للاحفیدی هم جواب داده گودنیم شطران مال منه اما اهمانته پیش منه اصلش مال خدا خدا داده به من شکر خدا بقید اینه بهش میگن اجازه گذر نگاه کنید توی بحث تعمل امثلت تایفت الولان هجد انه الفاظه ها فی کل مثالا علاقه ها جمعت معانی کسی رفتن تو دردن معانی پشت سر هم و روی هم انباشت شده ای رو داره فن اول ای مثال اول تزم برای کلمته این مثال اول در بر داره دو کلمه رو استوعبت و جمعی الاشیاء و شون که همه اشیاء و شعون رو در بر گرفت شعون غلط میشته فرموزه شو باید رو رو مارد بذاره استوعه و تا جمیع شیعه و شوم، علاوه چلستقصا یعنی وچ شمول یعنی به طور کامل همه رو دربر دید حتی لقد رویه میگه انقدر این شمول داره این دوتا کلمه خلق و حتی لقد رویه ابن عمره از عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم. نقل شده رضی الله هم قرعه ها این آیاری که هم فقاله من بذیر لحوشه اون فلیت رو خود. حالا اگه کسی چیزی داره چیزی براش مونده فلیت رو خود. از خدا طلب کرد. اون که هم که همه چمال هیچ چی باقی نیست هیچی دونه هیچ کسی هیچ نده ول مثال و سانی آیتون فلبله آقا توله هست مثال دوم معجزه در بلاغت و حسن زیبایی فقط جمع امن آداب سفر و لعت فعل ضعیف جمع کرده از آداب مسافرت و عطوفت بر شخص ضعیف مالایی از خلال الولیق چیزی که آسان نیست بر شخص بلیغ که بیانش کنه نمیتونه بگه این تو سطح کلمه انقدر معنا رسونده که یه بلیق نمی... فقط من بلا آداب سفر نیست همه جا به درد میخورم لا اسول على البليغ ان يعبر عنه الا بالقول المصحب بالتباج يه دنیا حرف بزنی تا بتونید معانی این رو بکر و كذلك الحال في المثال الثالث وهذا الاسلوب من الكرام و ايجاز ولما كان مدار الايجاز هنا على اتساع الالفاظ القديره چون محور میجاز در اینجا بر وسعت الفاظ کمه للمعان المتکاسرته نسبت به معانی زیاد ولی اغراض المتظاهمته و قلع از انباشته شده رو هم لا علا حسب بعض کلمات این او جمل بناش بر حسب کلمات و نیست اصلا بناش بر اینکه که معنا خود عبارت زیاد داره سم یا ایجازه قصره نامیده شده اجازه. حالا گروه دوباما نگاه کنید. قالت حالا و جا عرب با و الملک و صفن صفن صفن صفن یعنی مستفین حال دوتا کلمه حال است یعنی در حال صف بستن در حال منظم در کناه هم بودن. حال است از برای الملک یعنی ملارکه. ملک الفلاب داره جمعه یعنی همه ملارکه. همه ملائکه در حالی که صرف هستند آمد پروردگار خب ما می‌دونیم که جاعت پروردگار نمیاد دیگه قرینه جاعت فهمیده میشه یعنی جاعت امر را رب دک فرمان پروردگار میاد و ملائکه هم میان همه بسند در حالی که صرف بسند خب فهمید یک کلمه افتاده مضاف و اسم دومی رو ببین و قالت حالا قاف و القرآن المجید. قاف ولقرآن المجید. این ولقرآن مجید مجید صفت قرآن ولقرآن جان و مجید متعلق به حفظ مای مقدم. این قسم قسم به قرآن مجید قرآن با عظم بل این بل بهش میگن بل اضراب نقطه سر خط جمله بعد اصلا جداست بل یعنی این مطالب که گفته شد سر جای خودش درست بل نگاه کن به این مابد منتقل شد به این مابد این مابد رو در نظر بگیر که عجبو انجا اهم منظرون منون تو طوره قافرون و قال رو نه یا نه چه این بل عجبو یعنی بل عجبو من انجا پس هست فرف جر قبل از انا هنه قیاسی یعنی زده شدن این مردمان انجا هم منظرون من هم اینکه آمده از ای از جنس خودشون یا انسان اومده داره این حال رو بیم میده اینها تحجب کن خب این جواب قسم کو میخونید آیه رو به نگاه کنید جواب قسم نیست ولی وقتی سیاق آیه رو نگاه کنید میبینید که این آیه برای امر قیامته و برای اثبات معاده میخونید که این اینطوری بوده قاف و القرآن مجید ها ل تبعسن لام با نون تأکید ل تبعسنه یعنی حتما شما مبعوث میشید حتما شما برانگیخته میشید حتما قیامت دارید ل تبعنه و مشخص درست این هم از سیاق آیات جملات فهمیده میشه چون سوره قاف برای اصفات معاد بلی این است سه رو نگاه کن چند تا جمله حصف شده که این هاشیه میگه ارکت جماعت المسافرین المال کل ما ملک تفیغت شده که تو مالکی بهش میگن مال ولی اینجا یطلق و اندل اعراب اعراب جمع عربیه پیش آدم های بادی نشین مال به چی میگفتن؟ حلال ایبه به شطور اونا مال به شطور چون تمام چیز شون هم و خالت حالا فی موسی علیه السلام من ابنتیش رو ایبه موسی وقتی که فرار کرد از نست و قوم بنی اسرائیل رو گذاشته خلاصه فرعون از شر این که فرعون قصد کشتن او رو داشت و داستانی که براش پیدا شد فرار کرد رفت و رفت تا رسید به جایی دیگه خیلی دور شده بود در زیر یه درخت ای نشست آبی خورد منجا چشمه بوده زیر یه درخت بقول خودمون خونکی داشت استراحت میکرد دم غروب بود دیگه تا دم غروب خلاصه دویده بود بعد دم غروب دید که نزدیک آبادی بود اون چشمه دیگه دید که یه عده‌ای افرادی که گوسفنداشونو بردن چرا اومدن این هم دوش اینا برش نگاه کرد همه چوپانها برد بودن اینها گوسفندو میبرن چرا روز گوسفند میچره آخر شب شبش علف میدن این میاد توی آغول میخوابه مشقار میکنه و و خودمون استراحتش می کردن ایوان رو آخر شب بهش یعنی آخر روز بهش آب میدن که بتونن بفرستنش به عقل اینا اومده بودن آب بدن که زودتر برن و برسن به خون و زندگیشون خب مرد ازوروشون زیاد بود گوسونداشون رو می آوردن و پس میزدن و آب میدادن و میبردن این زن ها به خاطر اینکه دو تا زن بودن چند تا گوسمند داشتن این واسه خاطر اینکه با مردها مخلوط نشن و با اونها برخوردی نداشته باشن کنار وای میستادن تا اونا همه آب میدادن میبردن شد گثمانانشون رو بعد اینا میاومدن گثماندارشون آب میدادن خب قاعدتا اینا دیرتر هم همیشه میرفتن دو خونه میرست موسی وقتی نگاه کرد دید نه اصلا با آدما که هیچ رعایت چ نمیکنن؟ این دو تا ضعیفن از ضعیف و امیر و رک ون سرشون نمیشه هم تو کار خودشون رو میرسن میرسن نگاه نمیکنه. مشا بام قولداری بود وقتی داشت از مث میکرد به این دلیل بود که داره تو فررکز او با یه مش زد یه نفر رو کشت از اون فرعون میاد. میگه اومد و مسا بلند شد به غیرتش برخورد اومد و این مرد رو زد از لب آب چنار و گسفندا این دو, دو دختر دخترو آب دادو و برید این آب رو آب دادن راد اصلا نپرسید شما کی هستید نه به قول خودمون سلام علیک جدید و آب دود رفت نشد زیر درخت رفت نشد زیر درخت وقتی نشد زیر درخت یک کار خوبی کرد یک کاری رو <تصفيق> به قول خودمون ثبابی کرد اونجا برگشت به خدا بفت خدایا من دیگه در موندم اگه خیر و برکتی هست به ما بده آه. حالا با یه تحبیری هم منظورش چی بود؟ منظورش یه جایی داشت رو شب بخوابه. یه نونی هم بهش بدن بخوره گشنش یه اینقدر مخواست خدا هم مادر رحمتش رو باز کرد اون رو پیش شعیب برد و شعیب پیامبر الهی محلم این شد دختر شعیب رو گرفت با شعیب در عمر دام پروری شریک شد خدا به اون فرزند و زندگی و همه چی با هم داد بادره همون کار خیری رو که انجام داد حالا این قصد رو که فهمیدید نگاه کنید و قالت آلا فی حکایت موسی علیه السلام ما ابنته شعیبه با دو دختر شعیب فسقاله همان جالبه که چون کار مردونه بوده شعیب دو دختر رو میفرستاده فرستاده چون دوتا که باشن هم امنیتشون بیشتره هم خسته زیاد نمیشن چون به نداشته که نداشته مجبور بوده که اینها برن به قول و خودمون چپانی کنن. و سقال نهما پس آب داد برای این دو تا دخترصبح سم یعنی یه مدت طول کشید تا این نرا ثم اول لایل از زل. بعد برگشت به همون سایر میچ از ذ فقالا بعد اینطور گفت رب به لما انزل ما انزلطیل امم خیرین ف او خدایا؟ نسبت با آن چه که از خیر و برکت بخوایی به من بدی من فقیرم خیلی جمله قشنگی هم گفت نگفتش جمله شکل فعل امری داشته باشه که دعا به این شکل فعل امر من داشته. نه خدا یا. لما انزل تایل من خیره فقیرین لما متعلق به فقیره یعنی محتاج شد الان دیگه من احتیاج دارم به خیری اگه بخواید به ما بدی یعنی اگه خیری بخوایی به ما بدی نوک وقینو خب گفت بعد نگاه کن میگه فجاعت خب. پس اومدند اومد پیش موسا اهدام ما یکی از اون دو تا دختر تمشی تمشی حال است برای اهدام در حالی که راه میروند العس تهیا استهیا استهیائ نهایت یعنی طلب حیا شدتش بیشتر از نگفته الا حیا الا استهیا با شدت شرمندگی یه علا استهیاین یعنی مستحییتن یعنی علا به منه مع استهیائن یه یعنی خالص است از برای فاید تمشی تمشی خودش هم خالد از برای اهداه یعنی یکی این دوتا دخترها اومد اونجا تون لازم نبود دوتاشون بیاد پیش موسی یکیش برو بهش خبر کن بیاد یکیش اومد پیش موسی در حالی که راه میرفت با کمال خجارت یعنی اینجوری نبود که بیاد و با خنده و این نمیگه که جوری راه میره من خیلی با قول خودمون سنگین و رنگین و درست حسابی اومد بشه موسا قالت برگشت به موسا چی گفت؟ قالت این نعبی ید گفت پدر من بابای من تو رو صدا میکنم چرا؟ توضیح داد لیجزیه که عجرم آسقای کلنم تا بدهد به تو مزد سقایی کردنت برای ما رو موزد این کاری که امروز برای ما کردی بهتر چون پیامبران حاضر نبودن چیزی رو به قول خودمون از کسی صدقه قبول کنه م? و از طرفی هم از طرفی هم خداوند تعالی به موسی گفته بود که به شعیب گفته بود که این رو بیار و حالا که از ما درخواست کرده ما باید به او این هدیه رو داشته باشیم و این رو بدیم در هر حال بیان مزد سقایی تو بگیر موسا هم که از خداش بود دیگه گرتشنه و بشنه بود میریم حالا نون به امون که میده رفت خدا, خدا همه چی بشته ببینید بعد از این این نیل ما انزل تا الیمین خیلین چند تا جمله افتاده که از سیاه میشه یعنی اون دخترها راه افتادن رفتن خونه شد میگه جا پدرشون دید اینها امروز اتفاقا خیلی زود اومدن همشون دیر میامدن مثلا ساعت شیش بعد از داره و نیم هفت میامدن امروز ساعت چهار چهار و نیم اومدن. حالا یا خداونده یا خود اون دخترها به قول خودمون توضیح دادن چون اون دخترها تربیت شده امر نبوت بودن اومدن به پدرشون گفتن که امروز اگه ما زود اومدیم یا آقای خیلی به قول خودمون قلداری بود خیلی دست و پادار و این اومد و کمک کرد و به ما داد و هیچی هم نگفرفت نشست کنار درختی و اصلا نبا به ما نکرد. باقی کمک میکرد. شوهی من فهمیدی این آدم چه امانت داره. بعد از اون من هم چه بازویی داره. دید آدم به در بخوریه. بعد از اون طرف هم دید خوبکاری هم برایش انجام داده باید بشه بده. یکی فرستاد. یا نه. شوهید دیدین ها زود اومدن گفتم چرا زود اومدید عمو سوال کرد اونها توضیح دادن برای پدرشون پدرشون گفتش که خب بهتره که ما میرو صدا کنیم مذهشو بنیم این احتمالاً غریبه از آدم خوبی هم است تنها نمونه فرستاد یه چیزی این همه جمله این وسط درست شد حالا نباه کنید به خونم متن تامل امثله طائفت تا ثانیه تجد انها مجززتون عیز و ضا عارت ان تععرف سر ولی اجازفی ها سر ولی اجازفی ها فظور الل مثال اولین نگاهکن به مثال اول. تجد ان قد حوزف و میه کلتون می بینید حذف شد. اس تقلیر و کلامفیه و جا امر رو ر بکن.ونظور الل مثال تجد ان نه حوزه و منه جمع جواب قه. اس تقلیر کلام قاف وغرآل مجی نه تو ام مثال و سالس و المحضور و جملان ادتان چند تا شمده متعدد و نظم کلام من غیر حسبنن یقال سیاق کلام بدون حسب این می شده و از تا الى عبیه ما پس اونها رفتن پیش باباشون و قصد تا علیه ماکان من عمر موسا و شهد دادن برای باباشون قصه موسا رو آنچه از موضوع موسا و هر پدرشون هم فرستاد یکی از اینها رو پیش موسا و جاعت و جملات دیگه هم میتونه این وسط باشه حد دقل بشینه و جاعت و ما تمشیل است ولن ما کانه سبب اجازه ایجاز بی ها زهر امسلت خوال حس سمی ایجاز درست شد چون اینجا میار ایجاز سبب ایجاز هست بوده اینا نامیده شده اجازه حسف و یشتراتو فیحازن نومن ریجازن یقومت دلیلون یعنی قرینتو اون که یه قرینه باشه علم محصول و الا کان هست و ردی ان ردی ان غلط نمیشت و الا حصف میشه زشت و کلامو غیر مقبوله و کلام میشه غیر مقبول میشه معما نموزجش باقی موند که درس کامل دوره میکنه انشالله جلسه بعد براتون میخونم مباحث رو کامل کنید تا انشاءالله جلسه بعد موفق و معید و منصور باشید در پناه خدا برد.